در امور مادی دستور دادن در دستورهای دینی هست که همیشه به زیر دستای خودتون نگاه کنید در امور معنوی به بالا دست خودتون نگاه کنید این یعنی های مهمیه که انسان کسایی رو برای معاشرت انتخاب کنه که هم تیپ خودش باشن یا یکم پایین تارب نداره زیاد مادی نره دنبال کسایی که مثلا میگه اینها دستشون به دهنشون میرسه اینها مینو مردم قابل اتهام هستن آبرو داره با اینا بگردیم که از اینها به ما چیزی ب마سه مثلا قابل از اینکه با اینا بودن یعنی سرافتکندگی نگاه مردمی که اینها رو بزرگ میدونن وقتی ما کنارشون قرار میگیریم ما رو کوچیک میبینن این آویزونه یه چیزی میخواد، مثلا خودشه میخواد از طریق بند به این بالا بکشه یا مثلا نیازهاش رو برطرف کنه. لذات دستور دادن که مؤمنین ارتباط معمولی داشته باشن. اینطور باشه که با افرادی که هم خودشون خودشونن زندگی کنن. اما در ارتباط تو مسائل معنوی همیشه بالا دست و برادیت. افرادی که از جهت معنوید قدرتی پیدا کردن عزتی پیدا کردن و نزد خدای متعال آبرویی دارند و از ما ایمانشون قوی تر هست میگن با اینها زندگی کنید با اینها معنوس باشین و روزو به شب بیارید